خانم رزی سلام تو این 3 سال پنج سالی که با هم دیگه کار کردیم شما حکم مادر شرکت و مادر دوم مرد داشتیم خیلی خوشحالم از این که قهوه از دست شما خوردم، چای از دست شما خوردم و یه جورای نمک شما هم، خیلی بی و صرفاً دنبال انجام دادن کار واقعاً میگه این یه مورد شرکت نومین الماس شانس آورده که شما رو داره بی سر و صدا بود، بدون هاشی کارتون رو انجام میدیم بهترین نهبه ممکن و این باعث خوشحالیه که برخلاف به دیگه که همکارای این مدلی مثل شما خیلی اذیت کارن و خیلی حرف بر بیارن شما خیلی آروم و با متانت و با شخصیت و متین کارتون انجام میدین و همه تلاشتون اینه که بچه ها یه رفاه حداقل و نسبی داشته باشن تا بتونن راحت‌تر کار بکنن درست کار شما فروش نیست ولی شما مهربونی و محبت رو به بچه های من فروختین و بهشون یاد دادین شاید خیلی جاه از دستشون ناراحت شدین ولی با صبر و شکیبایی بهشون جواب دادین تا اونا از شما یاد تو و از شما این رو بخرن و گلگوشیم شما باشید براتون آرزو میکنم که هرچی اتفاق خوبه برای برای خودتون بعد برای فرزنده گلتون بیفته واقعا یکی از نیروهایی که به خاطر استخدامش همیشه به خودم افتخار کردم شخص شما بوده براتون آرزویم اصلاقیت دارم